درویشی به مناجات در می گفت یارب بر بدان رحمت کن که بر نیکان خود رحمت کرده ای که مریشان را نیک آفریده ای. اول کسی که علم بر جام کرد و انگشتری در دست جمشید بود. گفتندش چرا به چپ دادی و فضیلت راست راست. گفت راست را زینت راستی تمام است. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک مرد حشیار که نیکان خود بزرگ و نیک روزند.